جن خودخوا نوشته یا ریچارد تاکینز فصل دهم ده تو پشتم را می‌قاری من پشتت سوار می‌شوم بخش سوم مورچه‌ها حیوانات خانگی و گیاهان کشت شده ی خاص خود را دارند شته‌ها به طور جداگانه حشرهای مشابه در مکیدن شگیری گیاهان بسیار تخصص یافتند آنها خیلی خوب بواد را از گیاهان بیرون میکشند. اینگارا خیلی بهتر از هضم و جذب آن مواد انجام می دهند. در نتیجه مایهی را که دفع می کنند فقط بعضی از اجزای با ارزش خود را از دست داده است. قطرهای کوچک سرشار از قند شیره گیا از انتهای پشتشان با سرعت زیاد عبور می کند که در بعضی موارد وزنش در هر ساعت بیش از وزن خود مورچه است. اما در بعضی گونه‌های شته وقتی آن مواد می‌خواهد از بدن حشره خارج شود جلو راهش گرفته می‌شود. مورچه با ضربه‌ای که با شاخک و پاهایشان به شتا می‌زنند، آنها را می‌دوشاند. شتا به این حرکت پاسخ می دهند. در بعضی موارد قطرهشان را نگه می‌دارند تا موسکی ضربه بزند و حتی اگر مورچه آماده گرفتن آن نباشد از ریختن یک قطره هم خودداری می‌کنند. میگویند بعضی شط ها پشت خود را به شکلی تکامل داده اند که از نظر ظاهری مثل صورت مورچه است برای اینکه بهتر مورچه را جذب کنند. چیزی که از این رابطه نصیب شته می شود ظاهرا باید حفظ شدن از دشمنان طبیعی باشد. گونهایی از شط که زیاد توسط مورچه‌ها ها کشت شدهاند مثل گاوهای شیرده هم ما که زیر سرپناه زندگی می کنند سازوکار و کار طبیعی خود را برای دفاع از دست داده اند. در بعضی موارد مورشه از تخم شده ها درون لانه های زیرزمینی خود مراقبت می کنند، به نوزاد شد غذا می دهند و سرانجام وقتی بزرگ شدند آنها را به زمین های چرای محافظت شده منتقل می کنند. رابطه را که در آن سود دو جانبه برای اعضای گونه های متفاوت وجود دارد همیاری یا همزیستی می گویند. اعضایی گونه های متفاوت اغلب چیزهای زیادی برای عرض کردن به یکدیگر دارند. زیرا می مهارتهای متفاوتی را به اشتراک گذارند. این نوع عدم تقارن بنیادی می به رابورت های پایداری از نظر تکاملی منجر شود که همکاری های دو جانبه است. نوع مناسب دهان را برای بیرون کشیدن شگیری گیاه دارند. اما این دهان مکنده در دفاع از خود ناکارآمد است. مورچه‌ها در مکیدن شیر از گیاه مهارتی ندارند، اما در جنگیدن ماهرند. در خزانه ژنی مورچه‌ها ها، کشت و حفاظت از شد برتری یافته است. در خزانه ژنی شد همکاری با مورچه‌ها برتری پیدا کرده است. رابطه همزیستی برای منافع دو جانبه بین حیوانات و گیاهان رایج است. گیاه گلسنگ به ظاهر گیاهی است مانند هر گیاه دیگر. اما در واقع حاصل همزیستی و اتحاد نزدیک بین قارچ و جلبک است. هیچ یک از این دونه نمیتواند بدون آن دیگری به زندگی ادامه دهد. اگر اتحاد آنها را از آنچه هست کمی نزدیک تر میبود، دیگر اصلا نمیتوانیسیم آنها را یک موجود زنده دوتایی به شما را بریم. بنابراین شاید موجودات زنده وجود داشته باشند که دوتایی یا ستایی باشند، ولی ما هنوز تشخیصشان نداده ایم. شاید حتی خود ما در درون هر یک از سلولهای ما تعداد زیادی از چیزهای ریزی وجود دارد به نام میتوکندری. این میتوکندریها های شیمیایی کوچکی هستند که کارشان ایجاد انرژی مورد نیاز ماست. اگر ما های خود را از دست بدهیم، ظرف چند ثانیه از بین خواهیم رفت اخیرا به طور قابل قبولی استدلال کرده اند که میتوکندریا در اصل باکتری های همزیستی هستند که در ابتدای تکامل با سلولهایی از نوع مال ما پیوند یافتند برای دیگر موجودات ریز درون سلول ما نظریه های مشابهی ارائه شده است این موضوع یکی از آن مفاهیم انقلابی است که پذیرفتنش نیاز به زمان دارد اما زمان این پذیرش فرا رسیده به گمان من ما باید این عقیده بنیادی را بپذیریم که هر یکی از جنهای ما یک واحد همزیست است ما یک پرگنه قولاسای جنهای همزیست هستیم واقعا آدم نمی تواند از شواهدی برای این ادعا صحبت کند اما همونطور که در فرصای پیش نظر دادم این یک چیز سرشتی است. درست همونطور که ما درباره طرز کار ژن در گونه جنسی فکر می‌کنیم، روی دیگر سکه این است که ویروس ممکن است ژنی باشد که از پرگنه بدن جدا افتاده است. ویروس ها شامل DNA خالص یا یک مولکول خود تکثیر وابسته به آنند که در لفافی از پروتئین پوشیده شدهاند. همه آنها آنگلی‌اند. نظر ما این است که آنها از جنهای آشوبگر به وجود آمدند که از پرگن گریختند و حالا به جای اینکه از وسیله نقلیه رسمی تر، یعنی از تخمک و اسفرم استفاده کنند از طریق هوا مستقیما از بدنی به بدن دیگر میپرند اگر این واقعیت داشته باشد ما خودمان را پرگنی ویروس ها هم میتوانیم در نظر بگیریم که بعضی هاشان همزیستی و همکاری دارند و در اسفرم و تخمک از بدنی به بدن دیگر سفر می کنند. ژنهای ها هند. بقیه زندگی انگلی دارند و با هر وسیله که گیر بیاورند سفر می کنند. اگر دینه دی انگلی در اسپرم و تخمک سفر کند احتمالا همان شکل تناقضدار دینه مادرزاد را می سازد که در فصل سوم از آن صحبت شد. اگر در هوا یا با وسیله مستقیم دیگر سفر کند آنگاه ویروس در مفهوم عادی آن نامیده می شود. اما اینها گمانزنی هایی برای آینده است. در حال حاضر ما با همزیستی در سطح روابط بین موجودات پرسلولی سر و کار داریم، نه درون آنها. واژه همزیستی به طور قراردادی برای باهم بودن اعضای گونه های متفاوت به کار می دود. اما حالا که ما از دیدگاه تکاملی صلاح گونه ها فاصله می گیریم به نظر نمی رسد. هیچ دلیلی منطقی وجود داشته باشد برای اینکه با باهم بودن اعضای گونه های متفاوت را چیزی غیر از باهم بودن اعضای یک گونه در نظر بگیریم. در کل باهم بودن ها که شامل منافع دوجانبه باشد تکامل پیدا می کنند به شرطی که هر طرف چیزی بیشتر از آنچه گذاشته است برداشت کند. این قضیه درست است چه از اعضای یک دست کفتار صحبت کنیم چه از موجودات بسیار متفاوتی مثل مورچه و شته یا زنبور اصل و گلها. در عمل شاید موردی که در آن منافع دو جانبه وجود دارد از مواردی که در آن بهرهجویی یک طرفه است مشکل باشد. بر اساس اصول نظری تئوری، اگر دادن و گرفتن همزمان باشد، تصور پدید آمدن همبود هایی که در آن بحروری دو جانبست آسان است. مثل آن مورد که دو طرف گلسنگ را به وجود می آورند. اما مشکل وقتی است که بین دادن کمک و دریافت آن فاصله زمانی وجود داشته باشد. زیرا ممکن است کمک گیرنده اول تغلب کند و وقتی نوبت او می شود که جبران کند از این کار سر بازند. راه حل این مسئله جالب است و ارزش دارد که دربارش مفصل صحبت کنیم. با یک مثال فرضی بهتر می شود این موضوع را بیان کرد. فرض کنید. گونه ای از پرنده ها دوچار نوعی انگل ناجور کنه ای شده اند که باعث بیماری خطرناکی می شود. خیلی مهم است که چه زودتر کنه ها از بین بروند. به طور معمول هر پرنده وقتی پروبال خودش را با نک تمیز می کند می آن را بکند و از خود جدا کند. یک جا هست بالای سرش که نوکش به آن نمی رسد. راه حل این مشکل فوری به ذهن انسان میرسد. آدم ممکن است به سرش دسترسی نداشته باشد ولی براحتی می تواند از یک دوست خواهش کند. این کار را برایش انجام دهد. بعد از آن وقتی آن دوست به این آفت دچار شد می شود خدمتش را جبران کرد. در واقع تیمار دو طرفه هم در پرنده ها دیده می شود هم در پستانداران. این موضوع مفهومی را فورا به ذهن می آورد. هر آدم اهل بسیدت می دارد. آقلانه این است که کمک و یاری دو سره باشد اما ما می‌دانیم که نباید هر چیز را که به ذهن عاقلانه می‌رسد درست بپنداریم جن‌ها بصیرتی ندارند آیا نظریه جن خودخواه می می‌تواند خاراندن پشت همدیگر یا ایسارگری دو جنبه را در حالی که بین کار و تلافی آن فاصله زمانی وجود دارد توجیه کند ویلیام در کتاب 1966 خود درباره این موضوع صحبت کرده است که من قبلا به آن اشاره کردم او به نتیجه رسیده است که ایسارگری دوجانبهٔ با تأخیر در گونههایی پدید میآید که میتوانند یکدیگر را به عنوان افراد بشناسند و به یاد بیاورند تریورز موضوع این بحث را در کتاب 1971 بیشتر پی گرفته است وقتی او در این باره می نوشت به مفهوم راهبرد تکاملی پایدار مینارد سمیت دسترسی نداشت به نظر من اگر میداشت از آن استفاده میکرد زیرا این مفهوم راهی طبیعی برای بیان افکارش فراهم می‌آورد. اشاره او به معمای زندانی، یک معمای جالب در نظریه بازی ها نشان می‌دهد که او از قبل در آن خط فکری قرار داشته است. فرض کنید B دوچار انگل در بالای سرش شده است. ای آن را می‌کند. بعد یک وقت دیگر آن انگل روی سر A پیدا می‌شود. طبیعی است که دنبال B بگردد. و از او کمک بگیرد ولی بی فقط دماغش را بالا می کشد و راهش را می و می بی به حقباز فردی فردیست که از ایسارگران سود جسته اما نمیخواهد به موقع متقابلا جبران کند یا نصف نیمه تلافی کند اوضاع حقباز ها از ایسارگر که به همه کمک می بهتر است زیرا استفاده می بدون اینکه هزینهش را بپردازند. بیشک تیمار سر یک فرد دیگر در مقایسه با داشتن یک انگل خطرناک کار کوچکی است ولی به هر حال قابل غمزی نیست، مقداری از وقت و انرژی پربه ها را باید صرف آن کرد. بیای جمعیتی را در نظر بگیریم که افراد آن که از این دو راه برد را برگزیدند. همانطور که در تحلیل مینارد سمیت بود این راهبردها آگاهانه نیستند بلکه برنامه های رفتاری رفتتاگی ناآگاهند که توسط ژنها تعیین میشوند. این راهبرد را حالو و حقباز نام می‌گذاریم. هالوها به هر کس که لازم داشته باشد خدمت می کنند. بدون اینکه که برایشان فرق کند چه کسی است. حقباز بازها از فداکاری هالوها استفاده می کنند. ولی هیچ وقت به کسی خدمت نمی کنند. نه حتی به آنهایی که قبلا از کمکشان استفاده کرده مثل مورد کبوتر و اقاب. ما به صورت قراردادی برای بازده اینها امتیازهایی در نظر می گیدیم. مهم نیست که میزان دقیقه آنچه به دست می آید چه باشد. مهم این است که منفعت تیمار شدن بیش از هزینه آن باشد. اگر موارد انگلی شدن زیاد باشد، هر فرد از افراد هالو می تواند روی تعداد افرادی که قبلا تیمار کرده است برای تیمار شدن حساب کند. بنابراین میانگین بازده یک هالو در میان هالوها، مثبت است در واقع عملکرد آنها بسیار خوب است و واژه‌ی هالو برای آنها نابجا به نظر می رسد حالا فرض کنید یک حقه باز در آن جمعیت پیدا شود و بداند که در آن جمعیت همه او را تیمار می‌کنند و او هم کاری برایشان نمی‌کند میانگین بازده او از میانگین بازده هالوها بیشتر است بنابراین ژن حقه بازی در آن جمعیت منتشر می‌شود و ژن هالو رو به انقراض می‌گذارد دلیل این است که اهمیتی ندارد نسبت آنها به جمعیت چه باشد همیشه اوضاع حقوق بازها بهتر از هالو هاست. برای مثال جمعیت را در نظر بگیرید که 50 درصد آن حالو و 50 درصد حقوق باز باشند میانگین هر دو گروه کمتر است از میانگین کسی که در جمعیت 100 درصد حالو زندگی می کند. اما باز حقوق بازها اوضاع بهتری از هالوها دارند زیرا به ناب خصلت خود کمک میگیرند. و خیلی به کسی نمی‌رساند. وقتی نسبت حقباس ها به 90 درصد برسد، میانگیر بازدهی برای همه پایین خواهد بود. بسیاری از افراد دو طرف بر اثر عفونت ناشی از انگل رو به مرگ می‌گذرند. اما باز حقباس ها وضع بهتری از هالوها دارند. حالا اگر کل جمعیت رو به نابودی گذارد، در هیچ زمانی اوضاع هالوها از حقباس ها بهتر نخواهد شد. بنابراین تا وقتی که فقط این دو راهبرد را در نظر می گیریم هیچ چیز نمیتواند مانع انقراض حالوها و به احتمال زیاد نابودی کل جمعیت شود اما حالا فرض کنید راهبرد سومی به نام حسابگر وجود داشته باشد حسابگرها به افراد غریبه و به آنهایی که قبلا کمکشان کردند توجه می کنند. اما اگر کسی به آنها کلک بزند او را به یاد می سپارند و می کنند. از آن به بعد دیگر او را تیمار نمی کنن. در جمعیتی که شامل حسابگرها و حالوهاست، می شود آنها را از هم تشخیص داد. هر دو نسبت به دیگران رفتارشان ایسارگرانه است و هر دو بازدهشان برابر و بالاست. در جمعیتی که بیشتر آن افراد باز هستند، یک حسابگر تنها چندان موفق نیست. او انرژی زیادی صرف می کند برای بیشتر افرادی که با آنها روبرو می شود زیرا سبک سنگین کردن همه آنها برایش وقت گیر می شود از آن درد کسی او را تیمار نمی کند اگر تعداد حسابگرها در مقایسه با حقباز ها کم باشد ژن حسابگری رو به انقراض می گذارد. اما اگر حسابگرها تعدادشان در زمانی به حد تحییم کننده افسایش یابد احتمال اینکه یکدیگر را ملاقات کنند به اندازه زیاد می شود که تلاش بیهودشان در تیمار حقبازها را جبران می کند وقتی تعدادشان به آن حد سردوشت ساز برسد به تدریج بازهشان از بازده حقبازها پیشی می گیرد و حقبازها با سرعت فضاینده ای در جهت نابودی پیش می روند وقتی حقبازها تقریبا نابود شدند سرعت فروکاستشان کم می شود و ممکن است تا مدتها تنها به صورت یک اقلیت وجود داشته باشند به این دلیل که احتمال اینکه هر حق باز کمیاب به یک حسابگر دوبار برخورد کند بسیار کم است بنابراین در آن جمعیت نسبت افرادی که به یک حق باز خاص کینورزی داشته باشند کم خواهد بود من داستان این راهبردها را طوری گفتم که گویی میتوان آشکارا حس کرد چه رو خواهد داد. در واقعیت قضیه اینطور روشن نیست و من از روی احتیاط آن را در کامپیوتر شبیه‌سازی کردم تا ببینم این حدس شهودی تا چه اندازه صحیح است. معلوم شد در مقابل هالو و حق‌باز حسابگری از نظر تکاملی یک راهبرد پایدار است. زیرا جمعیتی را که شامل تعداد زیادی حسابگر باشد نه حالوها میتوانند از بین ببرند نه حقبازها اما بازی هم از نظر تکاملی پایدار است زیرا جمعیتی که در آن اکثریت با هاست، نه توسط حسابگرها از بین می رود، نه توسط هالوها هر جمعیت باید بر پایه یکی از این دو راه برده از نظر تکاملی پایدار بگردد. در دراز مدت ممکن است تکیه آن از روی یک پاشنه به پاشنه دیگر منتقل شود. بسته به مقدار بازدهها، ها البته با فرض کاملا دل در این شبیه‌سازی این یا آن راهبرد حوزه جذب فراگیرتری خواهد داشت و احتمال اینکه به کار گرفته شود بیشتر خواهد بود. ضمناً توجه داشته باشید با اینکه احتمال اینکه جمعیت عقب‌افتاده رو به انقراض بگذارد بیش از جمعیت حسابگرهاست این امر بر روی وضعیت آنها به عنوان یک راهبرد از نظر تکاملی پایدار اثری نخواهد داشت در صورتی که یک جمعیت به وضعیتی دچار شود که آن را در جهت نابودی براند نابود می شود که این هم بسیار بد است خیلی سرگرم کننده است شاهد شبیهسازیای در کامپیوتر باشید که با اکثریت قاطع حالوها اقلیتی از حسابگرها به تعداد کمی بالاتر از بسامد بحرانی و اقلیتی به همان اندازه از حقباز ها شروع شود اولین چیزی که اتفاق میافتد کاهش تأصف آور جمعیت حالو هاست که نتیجه بهرهجویی بیرحمانی حقباز ها از آنهاست جمعیت حقباز ها رو به انفجاری پیدا می کند که با از بین رفتن آخرین هالو به اوج خود می رسد. اما هنوز حسابگرها برای حقباز ها وجود دارند. در مقابل کاهش سریع هالوها تعداد حسابگرها به تدریج کم می شود. جمعیت آنها مدام از حقوق بازهای موفق ضربه می اما به نحوی خود را حفظ می کنند. بعد از نابود شدن آخرین هالو وقتی که دیگر حقه بازها نمی توانند به راحتی خود بهرهجویی بهره کنند حسابگرها کم کم خرج و هزینه حقه را زیاد می کنند. دائم خیزش جمعیت آنها شتاب می گیرد. جمعیت حسابگرها با شیب تندی افسایش مییابد و جمعیت حقباسها به انقراض نزدیک میشود ولی بعد با استفاده از امتیاز کمیاب بودن و پیامد آن که تقریبا سالم در رفتن از تلافی جویی حسابگرهاست جمعیتشان متعادل میشود و هر حال آرام آرام به صورت ناپیدا از صحنه بیرون را نمیشود و تنها حسابگرهایند که باقی میمانند عجیب این که در ابتدا حضور و حالوها عملاً حسابگرها را به خطر میانداخت زیرا موفقیت کوتاه مدت حقبازها را تأمین می کرد حال نمونه فرضی من درباره خطر تیمار نشدن کاملاً پذیرفتن است. موشایی که تنها نگه داشته می شوند روی قسمتهایی از سرشان جایی که در دسترسشان نیست زخمای ناجور پیدا می شود در یک مطالعه دیده شده در موشهای که در گروه بودند این مشکل وجود ندارد زیرا سر همدیگر را می لیسند. آزمایش عملیه نظریه ایسارگری دوجانبه باید جالب باشد و به نظر می رسد موشها موضوع مناسبی برای این کار باشد. تریورس همجیستی جالب ماهی های رفتگر را مورد بحث قرار می دهد. میدانیم حدود پنجاه گونه از ماهی های کوچک و میگوها زندگی خود را از راه کندن انگل از روی ماهی های بزرگتری گونه های دیگر تعمیل می کنند. است ماهی بزرگ از تمیز شدن سود می برد و به تمیز کننده هم غذای خوبی می رسد. این رابطه از نوع همزیستی است. در بسیاری موارد ماهی بزرگ دهانش را باز می کند و اجازه می ماهی رفتگرد برود تو و دندانهایش را پاک کند. و بعد با شنا از راه آبشش بیرون برود که به این ترتیب آنجا هم تمیز می شود آدم ممکن است انتظار داشته باشد یک ماهی بزرگ زیرکانه صبر کند تا کاملا تمیز شود و بعد آن وقت تمیز کننده را قورت دهد اما به جای این کار ماهی بزرگتر معمولا میگذارد شنا شناکنان و بدون درگیری پی کارش برود. این یک نمونه چشمگیر از ایسارگرری است زیرا در بسیاری موارد آن رفتگر هم اندازه ماهیهایی است که به طور آتی تعمه آن ماهی بزرگ می شوند. ماهی های رفتگر طرح راه راه به خصوص و حرکت های نمایشی ویژه دارند که آنها را به عنوان رفتگر متمایز می کند. ماهی های بزرگ از خوردن ماهی های کوچک که آن طرح راه راه خاص را دارند و با رقص خاصی نزدیک می شوند امتناع می کنند. هنگام تمیز شدن آنها وارد یک وضعیت خلصه مانن می شوند و اجازه می دهند ماهی رفتگر به همه جای درون و بیرون آنها سر بزند. با خودخواهی که ژنها دارند عجیب نیست که بازهای متخلب بخواهند از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده کنند. گونه از ماهی های کوچک وجود دارند که درست شبیه ماهی رفتگر هستند و همانطور می رخصند. تا بتوانند سفر امنی در قلمرو ماهی بزرگ داشته باشند وقتی ماهی بزرگ با آن خلسه خواب مانند مورد نظر فرو می‌رود آن متقلب ها به جای اینکه ها را جدا کنند یک گاز از باله بزرگ او میزنند و پا به فرار می‌گذارند ولی با وجود این حقوق بازها باز رابطه بین ماهی رفتهگر و مشترکش کاملا دوستانه و برقرار است طرفی نقش مهمی در زندگی روزانه اجتماعی آبسنگ ها دارد. هر رفتگری برای خود محدودهی دارد و ماهی های بزرگ را دیدهاند که مثل مشتریان یک آرایشگاه صف کشیده اند تا نوبتشان بشود. شاید در این مورد این اصرار به در یک جا ماندن است که تکامل ایسارگری دو جانبه با تأخیر را ممکن ساخته است. برای یک ماهی بزرگ همیشه پیش یک سلمانی رفتن به جای اینکه مدام دنبال سلمانی تازهی باشد خیلی راحت تر است و بنابراین صرف نمی کند آن ماهی رفتگر کوچک را بخورد باور این قضیه سخت نیست حضور رفتگر متقلب با فشار مختصری که به ماهی بزرگ وارد می کنند تا هر رقصنده راه راهی را بخورد احتمالا رفتهگرهای واقعی را به خطر می اندازد پا فشاری واقعی برای ماندن در محدوده خود مشتریها را قادر می کند که پیدایشان کنند و از متقلب ها بپرهیزند حافظه درازمدت و توانایی شناختن افراد در انسان به خوبی شکل گرفته است بنابراین می توان تصور کرد ایثارگری دو جانبه نقش مهمی در پیدایش انسان داشته است تریورت چنان در این امر پیش میرود که اظهار می کند بسیاری از خصوصیات روان شناختی ما حسادت، شرمندگی، حقشناسی، همدردی و مانند اینها برای توانایی بیشتر در تقلب کردن، کشف تقلب و پرهیز از متقلب شدن شکل گرفته است. از موارد قابل توجه، تقلب نامحسوس است که به ظاهر کمک دو جانبه ولی همواره کمتر از آنچه چه میستانند میدهند. حتی ممکن از مغز انباشته انسان و استعداد او در استعداد ریاضی به عنوان سازوکارهای برای تقلب هر چه زیرکانه تر و بهتر پیبردن بردن به تقلبهای دیگران پدید آمده باشد پول نشانه سوری ایسارگری دو جانبه با تأخیر است نظریه پردازی درباره ایثارگری ایسارگری دو جانبه آنگاه جذاب می شود که کاربرد آن را در گونه خودمان ببینیم با میلی که به این کار دارم معلوم نیست نظر من بهتر از کس دیگر باشد بنابراین خاننده را تنها میگذارم تا با فکر خودش به آن بپردازد